سیدهم نحه قلبه بر شش شبه ترس. همچنان که این فصل پایانی را میخانید از خودتان سؤال کنید و ببینید چند مورد از این اشباه در مسیر شما قرار گرفتهاند. قبل از اینکه بتوانید فلسفه این کتاب را به صورت موفقیت آمیز به کار ببرید، ذهنتان باید برای جذب آن آماده باشد. آمادگی مشکل نیست با مطالعه، تحلیل و شناخت سه دشمنی شروع می که شما باید آنها را شکست دهید این سه دشمن عبارتند از تردید شک و ترس وقتی این عامل منفی یا یکی از آنها در ذهنتان بماند هست ششم هرگز کار نخواهد کرد اعضای این سگانه نامقدس رابطه نزدیکی با هم دارند و هر جای یکی از آنها یافت شود دو عامل دیگر نیز در دسترس خواهند بود تردید نهال ترس است همچنان که به مطالعاتان ادامه میدهید این مطلب را به یاد بسپارید تردید به صورت شک متبلور می شود و اینها با هم ترکیب می شوند و ترس را به وجود می آورند این روند ترکیبی غالبا آهسته است و به این دلیل است که این سه دشمن اینقدر خطرناک هستند آنها بدون اینکه حضورشان مشاهده شود جوانه میزنند و رشد می کنند هدف این فصل آن است که کانون توجه را روی علت و راه علاج شش ترس اساسی متمرکز کند. همانطور که قبل از اینکه ما بتوانیم بر دشمنی مسلط شویم باید نام، عادات و محل اسکان آن را بشناسیم. همچنان که به مطالعه ادامه می دهید خودتان را به دقت تحلیل کنید و تعیین کنید که آیا یکی از این ترسهای شایع خودش را به شما چسبانده است یا خیر. گول آدات این دشمنان پنهانکار را نخورید. آنها گاهی در ذهن نیمه خداگاه پنهان میمانند، جایی که شناسایی آنها مشکل است و حصف آنها مشکل تر. شش ترس اصلی شش ترس اصلی وجود دارند که با ترکیباتی که ایجاد می کنند هر انسانی را به شکلی رنج می دهند. اکثر افراد اگر از هر شش ترس رنج نبرند، شانس آوردند. این ترس ها به ترتیب فراوانی به شرح زیرند: یک، ترس از فقر، دو، ترس از انتقاد، سه، ترس از بیماری، چهار، ترس از دست دادن عشق، پنج، ترس از پیری، شش، ترس از مرگ. لازم به ذکر است که ترس از فقر، انتقاد و بیماری ریشه بسیاری از نگرانی‌ها هستند. همه ترس های دیگر اهمیت جزئی دارند آنها را میتوان زیر این شش عنوان گروه بندی کرد ترس ها چیزی نیستند جز حالات ذهن حالات ذهن فرد کنترل شدنی هستند ترس از فقر فقر و ثروت نمیتوانند با هم آشتی یا مصالحه کنند جاده که منجر به فقر و جاده که منجر به ثروت می شود در دو جهت مخالف قرار دارند اگر ثروت میخواهید باید از پذیرش شرایطی که منجر به فقر میشوند، امتنا کنی ترس از فقر یک وضعیت ذهن است نه چیز دیگر ولی وجودش کافی است که امکان موفقیت را در هر کاری نابود کند این حقیقتی است که به شکل دردآوری در طول رکود اقتصادی نمود پیدا کرد این ترس قوه عقل را فلج می کند. قوه تخیل را نابود می کند، خود اتکایی را می کشد، را تضعیف می کند، ابتکار و منجر به عدم قطعیت هدف می شود، به عقب انداختن کارها را ترغیب و اشتیاق و شور و شوق را نابود می کند و خود کنترلی را غیر ممکن و نهایتا شخصیت را بدون جذابیت می کند. امکان تفکر صحیح یا دقیق را از فرد می گیرد. تمرکز تلاش را منحرف و بر پشتکار غلبه می کند. قدرت اراده را تبدیل به هیچ و بلند پروازی را نابود می کند. حافظه را ضعیف و از شکست در هر شکل قابل تصوری دعوت می کند. اشق را میکشد و حیجانات زریفتر قلب را به قتل میرساند. مانع دوستی می شود و از فاجعه به صدها شکل استقبال می نماید. باعث رخفت، بدبختی، و فلاکت می شود. ترس از فقر بیشک مخربترین ترس از ترس های اصلی است. این ترس در ابتدای فهرست ترس ها قرار دارد چون تسلط بر آن از همه ترس های دیگر سختتر است بیان حقیقت درباره منشأ این ترس جرأت قابل توجهی می خواهد و پس از بیان حقیقت قدرتی بیشتر از آن برای پذیرفتن حقیقت لازم است ترس از فقر از گرایش به رسرسیده انسان به شکار کردن اقتصادی هم نوعش به وجود آمد. تقریبا همه حیوانات پایینتر از انسان به صورت غریزی به انگیزش در میآیند. اما ظرفیت تفکر آنها محدود است. بنابراین آنها به شکار فیزیکی یکدیگر میپردازند. انسان با حس برتر مشهود خود و با ظرفیت تفکر و عقل خود جسم همنوع خود را نمی خورد بلکه از تغذیه مالی او رضایت بیشتری کسب می کند انسان چنان حریص است که هر قانون قابل تصوری تصویب شده است تا او را از همنوع خود حفاظت کند از میان همه اثار دنیا که از آنها چیزی میدانیم عصری که در آن زندگی میکنیم به نظر میرسد عصری است که به خاطر علاقه دیوانوار انسان به پول برجسته است انسان کمتر از گرد و قبار به حساب میآید، مگر اینکه حساب بانکی پر از پول داشته باشد. مهم نیست آن را چطور کسب کرده است؟ او پادشاه یا کله گنده است. از قانون بالاتر است در سیاست حاکم است. در کسب و کار غالب است و وقتی او راه میرود تمام دنیا در مقابل او تعظیم می کند. هیچ چیزی به اندازه فقر باعث رنج و عذاب و تحقیر انسان نمی شود. فقط کسانی که فقر را تجربه کردند، معنای این سخن را کاملا درک می کنند. عجیب نیست که انسان از فقر میترسد. انسان با دامنه گستردهی از تجارب به ارس رسیده قطعا آموخته است که به بعضی از انسانها نمی توان در مورد پول و دارایی دنیوی اعتماد کرد. این یک ادانامه نیشدار است و بدترین قسمت آن این است که این ادعانامه صحیح است. انگیزه اکثر ازدواج ها ثروت یکی از زوجین یا هر دو زوج است. بنابراین عجیب نیست که دادگاه های طلاق شلوغ هستند. انسان مشتاق است به هر تاریخ که میتواند ثروت کسب کند. اگر امکان دارد از روش های قانونی و اگر لازم یا به مسلحت است از روش های دیگر. خود کاوی می تواند زعف هایی که فرد دوست ندارد به آن اعتراف کند را آشکار سازد این شکل از بررسی برای همه کسانی که از زندگی چیزی بیش از وضعیت معمولی یا فقر می ضرورت دارد همچنان که خودتان را نکته به نکته چک می کنید به یاد داشته باشید شما هم دادگاه هستید هم حیعت منصفه هم مدعی العموم و هم وکیل مدافع، هم شاکی و هم متشاکی و در عین حال دارید محاکمه می شوید. مستقیما با حقایق مواجه شوید. سوالات دقیقی از خودتان بپرسید و های مستقیمی مطالبه کنید. وقتی امتحان تمام شد، به شناخت بیشتری از خودتان خواهید رسید. اگر احساس نمی کنید که بتوانید قاضی بیطرفی در ارزیابی خودتان باشید، از کسی که شما را خوب میشناسد بخواهید در حالی که شما خودتان را سینجیم میکنید به عنوان یک قاضی عمل کند شما به دنبال حقیقت هستید به هر قیمتی که شده حتی اگر باعث خجالت و شرمندگی موقتتان شود حقیقت را به دست آورید اگر از اکثر افراد پرسیده شود بیش از همه از چه چیزی میترسند جواب میدهند از هیچ چیز نمیترسند این جواب نادرست است چون کمتر کسی میداند که به واسطه ی نوعی از ترس محدود شده از حرکت بازمانده و به لحاظ معنوی و جسمی آزار دیده است هیجان ترس چنان نامحسوس و ریشه است که ممکن است بار سنگینی آن بر دوش انسان تحمیل شود اما او هرگز حضوران را درک نکند فقط یک تحلیل شجاعانه حضور این دشمن آمرا فاش خواهد کرد وقتی چنین تحلیلی را شروع می کنید، در شخصیتتان کاوش کنید. فهرستی از علائم ترس از فقر که باید به با آنها توجه کنید، به شرح زیر بیان می شود. علائم ترس از فقر بی تفاوتی این علامت عموماً از طریق فقدان بلند بیان می شود. از طریق تمایل به تحمل فقر، پذیرفتن هر چیزی که زندگی به شما می دهد بدون اینکه اعتراض کنید تنبلی ذهنی و جسمی، فقدان ابتکار، تخیل، اشتیاق و خودکنترلی، شک و تردید، معمولاً از طریق بهانه گرفتن برای لاپوشانی، توجیه کردن و یا معذرت‌خواهی به خاطر اشتباهات، گاهی به شکل حسادت به کسانی که موفق هستند یا با انتقاد کردن از آنها بیان می شود نگرانی عموماً از طریق ایبجویی از دیگران گرایش به خرج کردن بیش از درآمد بیتوجهی به ظاهر فردی اخم کردن و سگرمه خود را در هم کشیدن فقدان تو دستپاچگی دست و فقدان خود اتکایی بیان می شود. احتیاط بیش از حد فرد همیشه عادت دارد در هر وضعیتی نیمه خالی لیوان را ببیند فکر و صحبت در مورد شکست احتمالی به جای تمرکز بر روی وسیله موفقیت همه ی راه های بلا و فاجعه را بلد باشد ولی هرگز دنبال برنامهای برای اجتناب از شکست نباشد همیشه منتظر وقت مناسب برای شروع به عمل کردن برنامه ها و ایدهها باشد طوری که منتظر ماندن به یک عادت دائمی تبدیل می شود به یاد آوردن کسانی که شکست خوردند. و فراموش کردن آنهایی که موفق شدند گاهی معته خشخاش میگذارد و گاهی از چیزهای مهم قفلت می‌کند عقب انداختن کارها عادت به فردا فردا کردن و انجام ندادن کاری که باید پارسال انجام میشد. وقت کافی صرف دلیل تراشی و عذر بهانه آوردن برای انجام ندادن کار این علائم رابطه نزدیکی با احتیاط و بیش از حد، شک و نگرانی دارد. امتناع از پذیرفتن مسئولیت وقتی بتوان از آن اجتناب کرد. تمایل به مصالحه به جای مبارزه جدی. مصالحه با مشکلات به جای مهار کردن و استفاده از آنها به عنوان جای پاهایی برای پیشرفت. چانه زدن سر یک سکه به جای اینکه طلب ثروت موفقیت، رفاه، دارایی، رضایتمندی و خوشبختی کند برنامه ریزی برای اینکه اگر شکست خورد چکار کند به جای اینکه پولها را پشت سر خود خراب کند و اغبنشینی را غیرممکن ممکن کند ضعف و غالباً فقدان اعتماد به نفس قطیت هدف، خودکنترلی، ابتکار، اشتیاق بلند پروازی، صرف جویی و قدرت تعقل صحیح. انتظار فقر را داشتن به جای طلب کردن ثروت معاشرت با کسانی که فقر را میپذیرند به جای طلب معاشرت با کسانی که طالب ثروت هستند و ثروت دریافت میکنند. پول حلال مشکلات است. بعضی ها میپرسند چرا کتابی در مورد پول نوشتید؟ چرا ثروت را فقط با دلار می سنجید. بعضی ها باور دارند و درست هم باور دارند که شکل دیگری از ثروت وجود دارد که مطلوبتر از پول هستند. بله ثروت وجود دارند که نمی توان آنها را با دلار سنجید ولی میلیون نفر هستند که میگویند همه پولی را که من نیاز دارم به من بده تا من هر چیز دیگری را که می خواهم به دست آورم. علت اصلی که این کتاب کسب ثروت را نوشتم این است که جهان اخیراً تجربه‌ای را پشت سر گذاشته که میلیون‌ها انسان را ترس فقر فلج کرده بود. اثر این نوع فقر بر انسان به خوبی به وسیله وست بروک پگلر توصیف شده. پول فقط یک حلقه فلزی یا تکه کاغذ است و گنجینه‌های بسیار دلوجان را پول نمی‌تواند بخرد. ولی افرادی که ورشکسته میشوند، شوند اکثران قادر نیستند این نکته را به یاد بیاورند و روحیشان را حفظ کنند کسی که آسوپاس است، بیخانمان است و یا قادر نیست شغلی پیدا کند اتفاقی برای روانش میافتد. میتوان این اتفاق را در خمودگی شانههایش، کلاه بر سرنهادنش و راه رفتنش و خیره شدنش مشاهده کرد او نمی تواند. از احساس حقارت نسبت به کسانی که شغل عادی دارند فرار کند. هرچند که بداند آنها از لحاظ شخصیت، هوش یا توانایی در سطح او نیستند. از طرف دیگر این افراد معمولی حتی اگر دوستان او باشند احساس برتری می کنند و او را شاید به صورت ناخودآگاه یک فرد معیوب تلقی می کنند. او شاید مدتی قرض کند اما پول قرض کردن برای داشتن یک زندگی معمولی کافی نیست. و او نمیتواند برای مدت بسیار طولانی قرض کند. قرض کردن به خودی خود وقتی فرد برای امرار معاش قرض میکند، تجربه افسرده ای است و این پول فاقد قدرت پولی است که فرد به طور عادی در درمی‌آورد و روحیه‌اش را رو احیا میکند. البته این چیزها در مورد ها یا کسانی که به نداری عادت کردند صدق نمی‌کند، بلکه فقط در مورد افرادی که عزت نفس و بلند پروازی معمولی دارند صدق میکند. زنان یس را پنهان می کنند. زنان در وضعیت نداری و آسوپاسی متفاوت هستند به نوعی زنان را اصلا جز آدم های آسوپاس حساب نمی کنیم. آنها به ندرت است هستند به ندرت به گدایی در خیابانها دیده می‌شوند و با همان علائم آشکاری که مردان دوچار این وضعیت قابل شناساییند، قابل شناسایی نیستند البته منظور من اجوزه های سرگردان خیابانهای شهر که در نقطه مقابل مردان همیشه بیخانمان هستند نیست منظور من زنان جوان خوشنام صالح و باهوش است تعداد آنها شاید زیاد باشد ولی یعسشان آشکار نیست شاید اصلا خودشان را میکشند و از نظرها پنهان می‌شوند وقتی مردی دماغ و افسرده باشد وقت دارد که در خود فرو رود شاید کیلومترها سفر کند و برای مصاحبه شغلی فردی را ببیند و دریابد که آن شغل پر شده است یا آن شغل یکی از آن شغل‌هایی است که حقوق پایه ندارد و حقوقش فقط کارمزدی از فروش زلمزینبوهای زیمباهای فایده‌ای که هیچ کس آن را نمی‌خرد است آن هم مگر از روی هم. پس از اینکه آن اقدام به جایی نمی‌رسد او خود را سرگردان در خیابان می‌یابد در نتیجه شروع می‌کند به قدم زدن و قدم زدن او به ویترین مغازه‌ها به چیزهای تجملاتی که مال او نیست خیره می‌شود و احساس حقارت می‌کند و راه را به کسانی می‌دهد که می ایستند تا با اشتیاق به ویترینها نگاه کنند. در ایستگاه‌های راه آهن پرسه میزند یا به کتابخانه می‌رود تا پاهایش استراحتی بکنند و اندکی گرم شود. اما اینکه نشد دنبال کار گشتن، او دوباره شروع می‌کند به حرکت. او شاید متوجه نباشد ولی بیهدفیش اول او را لو می دهد حتی اگر ظاهرش او را لو ندهد. ظاهری که با لباس خوبی که از روزهایی که کار ثابت داشته است پوشانیده شده ولی این لباس هم نمی تواند خمودگیش را پنهان کند. پول تفاوت ایجاد می کند. او هزاران نفر از جمله حسابداران یا منشیان یا داروخان چیان را می بیند که مشغول کارشان هستند. از اعماق وجودش با آنها حسادت می کند. آنها استقلال، عزت نفس و مردانگی دارند و او می تواند خودش را متقاعد کند که آدم خوبی است. هرچند هر ساعت در محکمه ذهنی خیش مدام سعی می کند خلاف این را ثابت کند. فقط پول است که این تفاوت را در او ایجاد می کند. او با اندکی پول می تواند دوباره خیش از دست رفته خودش باشد. بعضی از کارفرمایان تکاندهنده ترین سوء استفاده را از افراد آسپاس می کنند. برخی بونگاها آگهی های رنگی کوچکی را پشت در آویزان می کنند که دستموزهای ناچیزی به افراد آسپاس می دهند. هفته دوازده دلار، هفته پانزده دلار، شغل هفته پانزده دلار کمتر دیده می شود. اگر هم کسی شغل هفته بیست و پنج دلار داشته باشد، بر این تابلو نمی زند. یک آگهی استخدام دارم که آن را از یک روزنامه محلی که تقاضای یک منشی کرده بود جدا کردم. این آگهی استخدام خواستار منشی بود که خوب و پاکیزه باشد و از ساعت 11 صبح تا دوی بعد از ظهر سفارشات تلفنی را در یک رستوران در قبال دستمزد ماهیانه 8 دلار بگیرد. توجه کنید ماهی 8 دلار نه هفته ای 8 دلار. آگهی خواسته بود که فرد دین خود را قید کند. اصلا می توانید بی شرفی کارفرمایی که می خواهد ساعت یازده سنت برای منشی خوب و ای بپردازد و تازه تفتیش اقایت هم بکند. تصور کنید؟ ولی این تمام چیزی است که به افراد آسوپاس ارائه می شود. ترس از انتقاد این که انسان چطور دچار دو دوچار اینو ترس شد را هیچکس کس نمی تواند دقیقاً بیان کند. اما یک چیز معلوم است. این ترس در انسان شکل بسیار پیشرفته‌ای پیدا کرده است. برخی باور دارند این ترس زمانی پدیدار شد که سیاست یک حرفه شد. دیگران باور دارند ریشه آن به زمانی برمیگردد که زنان شروع کردند به دقدقه پیدا کردن در مورد سبک‌های پوشششان. من ترس بنیادی از انتقاد را به آن بخش از طبیعت موروسی انسان نسبت می‌دهم که باعث می‌شود انسان نه فقط اموال و ابزار همنوع خود را تصاحب کند بلکه این کار خود را با انتقاد از شخصیت همنوعش توجیه کند دزد از کسی که از او سرقت کرده است انتقاد می‌کند و سیاستمدار نه با نشان دادن فضایل و محاسن خودش بلکه با تلاش برای تهمت زدن به مخالفانش به دنبال کسب مقام است ترس از انتقاد شکل‌های فراوانی دارد که اکثر آنها کوچک و پیش پا افتاده هستند مردان به این خاطر کلاه بر سر می‌گذارند که همه همین کار را می‌کنند نه اینکه واقعا به کلاه نیاز دارند فرد داخل این خط فکری میافتد و تقلید می‌کند تا مبادا دیگری از او انتقاد کند هدف زنان از گذاشتن کلاه جلب نظر و صرفاً تزییناتی است اما نباید فرض را بر این گذاشت که زنان از ترس از انتقاد رها هستند اگر زنی ادعا کند که از این نظر از مردان برتری دارد از او بخواهید با کلاهی که مربوط به عصر 1890 است در خیابان راه برود تولید کنندگان باهوش و زرنگ لباس در سرمایه گذاری بر روی این ترس اساسی از انتقاد که بشریت به آن گرفتار شده است کند عمل نکردند هر ماه مدل های انواع متعدد لباس تغییر میکند چه کسی مدل ها را تعیین میکند قطعاً تولید کننده لباس این کار را میکند نه خریدار لباس چرا او مدل ها را اینقدر زود تغییر میدهد پاسخ روشن است او مدل ها را تغییر میدهد تا بتواند لباس بیشتری بفروشد به همین دلیل تولید کنندگان اتومبیل به استثنای چند تولید کننده نادر و بسیار با ملاحظه صاحب‌های مدل‌های اتومبیل را در هر فصل عوض می‌کنند. هیچ کس نمی‌خواهد اتومبیلی را که آخرین مدل نیست براند، حتی اگر مدل قدیمی واقعا بهتر باشد. ما رفتاری را توصیف کرده‌ایم که افراد تحت تأثیر ترس از انتقاد در چیزهای پیش پا افتاده و کوچک زندگی از خود نشان می‌دهند. حالا نمود این ترس در رفتار را وقتی پای مسائل جدی در میان است بررسی می‌کنیم. به ندرت کسی را خواهید یافت که جرأت داشته باشد باور خود به این موضوع را صراحتا بیان کند. اکثر افراد اگر به اندازه کافی تحت فشار قرار گیرند، به جای اقرار به ناباوریشان به تعصبات دینی، دروغ می‌گویند. چرا یک فرد معمولی حتی در اصر روشنگری از انکار باورش به ترساتی که در طول چند دهه گذشته پایه اکثر ادیان بوده تفره می رود؟ پاسخ این است به خاطر ترس از انتقاد مردان و زنان به خاطر اینکه جاعتت کردند ناباوری خود به روح را بیان کنند سوزانده شدند. عجیب نیست که ما نوعی خداگاهی را به ارث برده‌ایم که ما را از انتقاد می‌ترساند؟ زمانی نه چندان دور بود که انتقاد مجازات شدیدی در پی داشت. هنوز هم در بعضی کشورها اینطور است. ترس از انتقاد ابتکار را از انسان می رو باید. قدرت تخیل را نابود می‌کند، خود اتکایی را می‌گیرد و به صدها شیوه دیگر به او آسیب می‌رساند. والدین غالباً با انتقاد کردن از بچه آسیبی غیر قابل برگشت به آنها میزنند. وقتی بچه بودم، مادر یکی از همسالانم تقریباً هر روز او را با یک ترکه تنبیه و همیشه کارش را با این جمله تکمیل می کرد. تو قبل از 20 سالگی از دار و تدیب سردرخواهی آورد. او در سن 17 سالگی به یک کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد. انتقاد به صورت مجانی خواسته یا ناخواسته پخش می شود. نزدیکترین بستگان فرد غالباً بدترین مهاجمان هستند. انتقاد باید به عنوان یک جرم شناخته شود. برای هر والدینی که از طریق انتقاد غیر ضروری عقده حقارت را در ذهن یک بچه می کنند کارفرمایانی که طبیعت انسان را درک می کنند با پیشنهاد سازنده به بهترین نتیجه در انسان ها می رسند، نه با انتقاد مخرب. والدین می به همین نتایج در مورد برچه برسند. انتقاد تنفر توأم با ترس را در قلب انسان می و عشق یا محبت ایجاد نمی کند. علائم ترس از انتقاد این ترس تقریبا مثل ترس از فقر همهگیر است و تأثیرات آن به همان اندازه برای پیشرفت فردی مهلک است. علت اصلی آن این است که این ترس ابتکار را نابود می کند و استفاده از تخیل را ترغیب نمی کند. علایم اصلی این ترس عبارتنده از دست پاچگی که عموماً به صورت موارد زیر نشان داده می شود. نگرانی ترس در کلام و در ملاقات با غریبه ها، حرکات حاکی از دستپاچگی دستها اعضا و حرکت چشم ها. عدم آرامش که به صورت موارد زیر نشان داده می شود عدم کنترل صدا، نگرانی و ناراحتی در حضور دیگران حالت نامطلوب بدن در وضعیت ایستاده و حافظه ضعیف. نداشتن شخصیت عدم قاطعیت در تصمیم گیری، نبود جذبه شخصی و فقدان توانایی در بیان سریح نظرات. عادت به تفر رفتن به جای روبرو شدن مستقیم با موضوعات. موافقت کردن با دیگران بدون بررسی دقیق نظراتشان. عقده هغارت. عادت به بیان خوشنودی از خیشتن با کلام و با عمل به عنوان وسیله برای سرپوش گذاشتن روی احساس حقارت استفاده از کلمات قلمبه به برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران غالبا بدون آگاهی از معنای درست کلمات تقلید از دیگران در لباس گفتار و رفتار و پوز پیشرفت‌های خیالی که گاهی به طور سطحی احساس برتر بودن به آدم می‌دهد. ولخرجی عادت به تلاش برای چشم و همچشمی و بیش از دخل خرج کردن. فقدان قوه ابتکار. ترس از استقبال از فرصتها برای پیشرفت فردی. ترس از بیان نظرات عدم اعتماد به ایده های خود، دادن جوابهای تفرامیز به سوالات افراد موافق تردید در رفتار و گفتار، حقه هم در کلام و هم در عمل. فقدان بلند تنبلی ذهنی و جسمی، عدم ابراز وجود و قاطعیت، کندی در تصمیم گیری. به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن عادت به قیبت کردن و چاپلوسی کردن عادت به پذیرفتن شکست بدون اعتراض دست کشیدن از مسئولیت در مواجهه با مخالفت دیگران سوء زن به افراد بدون علت فقدان زرافت در رفتار و گفتار عدم تمایل در پذیرفتن تقصیر برای اشتباهات ترس از بیماری ریشه این ترس ممکن است واقعا جسمی و یا اجتماعی باشد. ریشه این ترس رابطه نزدیکی با علل ترس از پیری و ترس از مرگ دارد چون فرد را به مرز دنیاهای وحشتناکی سوق میدهد که انسان از آنها خبر ندارد ولی درباره آن داستانهای ناراحت کننده به آموخته شده است. عموما عقیده بر این است که بعضی از افراد بی اخلاقی که در کارشان با سلامت افراد درگیر بودند در زنده نگه ترس از بیماری نقش زیادی داشتند. اساساً انسان به این خاطر از بیماری می ترسد که تصاویر وحشتناکی از آنچه بعد از مرگ بر سر او خواهد آمد در ذهن او کاشته شدند. همچنین از هزینه اقتصادی که به بار می آورد نیز می ترسد. یک بار یک پزشک مشهور تخمین زد که 75 درصد همه افرادی که برای خدمات حرفه‌ای به پزشک مراجعه می‌کنند، دچار خودبیمارنگاری هستند. ترس از بیماری، حتی وقتی کوچکترین علتی برای ترس وجود نداشته باشد، غالباً علائم جسمی بیماریی که فرد از آن می‌ترسد را تولید می‌کند. ذهن انسان قوی و قدرتمند است. می‌تواند سلامتی را بسازد. یا نابودش کند تولیدکنندگان داروهای انحصاری از این ضعف شایعه که ترس از بیماری است استفاده کردند و پول هنگفتی به جیب زدند این شکل از تحمیل بر روی انسان‌های ساده باور در طول 20 سال گذشته شیوع فراوانی پیدا کرده است در طول اپیدمی آنفولانزا که در طول جنگ جهانی شیوع پیدا کرد شهردار نیویورک گامهای مهمی برداشت تا آسیبی که افراد از طریق ترس ذاتیشان از بیماری به خود میزدن را کنترل کند او از روزنامه نگاران درخواست کرد و به آنها گفت آقایان احساس می کنم لازم است از شما درخواست کنم که هیچ تیتری مربوط به اپیدمی آنفولانزا را چاپ نکنید اگر شما با من همکاری نکنید نمی توانیم شرایط را کنترل کنیم روزنامه‌ها از چاپ مطلب و گزارش در مورد آنفولانزا دست برداشتند و در عرض یک ماه اپیدمی به صورت موفقیت کنترل شد تای یک سری آزمایش‌ها که چند سال پیش انجام شد ثابت شد افراد با تلقین واقعاً بیمار میشوند. ما این آزمایش را این گونه انجام دادیم سه آشنا را به ملاقات سه قربانی فرستادیم و هر یک از آنها این سوال را می‌پرسیدند چه بیماریی داری بد جوری بیمار به نظر میرسی؟ اولین سوال کننده معمولاً باعث شد فرد لبخندی بزند و با بیخیالی بگوید چیزی نیست حالم خوب است دومین سوال کننده معمولاً با این جواب روبرو شد. دقیقاً نمیدانم ولی احساس خیلی بدی دارم. سومین سوال کننده معمولاً با اعتراف صریح قربانی به اینکه واقعاً احساس می کند بیمار است مواجه شد. اگر در این که این باعث ناراحتی فردی می شود شک دارید این آزمایش را رو روی یک آشنا امتحان کنید ولی افراد نکنید. شواهد قاطعی وجود دارد که نشان می دهد بیماری گاهی با تکانه فکری منفی شروع می شود. چنین انگیزهی می تواند از طریق تلقین از یک ذهن به ذهن دیگر منتقل شود یا به وسیله فرد در ذهن خود فرد ایجاد شود. شخصی در همین زمینه می گفت وقتی کسی از من می پرسد حالم چطور است دوست دارم با مشت جواب طرف را بدهم. پزشکان بیماران را به اقلیم جدید می‌فرستند تا حالشان خوب شود چون تغییر وضعیت و نگرش ذهنی لازم است. بذر ترس از بیماری در ذهن هر انسانی وجود دارد. نگرانی، ترس، ناامیدی در عشق و در کسب و کار باعث می شود این بذر جوانه بزند و رشد کند. رکود اقتصادی اخیر پزشکان را حسابی مشغور کرد چون هر شکل از تفکر منفی باعث بیماری می شود. ناامیدی در کسب و کار و در عشق از اولین علل ترس از بیماری است. علائم ترس از بیماری علائم این ترس تقریبا همهگیر عبارتنده از خودتلقینی. عادت استفاده منفی از خود تلقینی به وسیله جستجو کردن و انتظار کشیدن برای یافتن علائم انواع بیماری لذت بردن از بیماری خیالی و طوری از آن صحبت کردن که انگار واقعی است. در مورد عمل جراحی، تصادف، حادثه، سانحه و دیگر شکل‌های بیماری با دیگران صحبت کردن، تجربه کردن رژیم‌های غذایی، های ورزشی و های کم کردن وزن بدون راهنمایی حرفه‌ای، امتحان کردن راه های خانگی داروهای انحصاری و مجونهای درمانگر خود بیمارنگاری عادت به صحبت کردن از بیماری متمرکز کردن ذهن بر روی بیماری و انتظار نمود آن به محض ناراحتی عصبی هر داروی یا چیزی که داخل بطری شود نمیتواند این بیماری را درمان کند این بیماری به وسیله تفکر منفی ایجاد شده و فقط تفکر مثبت است که میتواند آن را معالجه کند گفته میشود که خود بیمارنگاری که یک اصطلاح برای بیماری خیالی است به اندازه بیماری که فرد از آن میترسد آسیب وارد میکند اکثر علل بیماریهای عصبی در بیماران خیالی ریشه دارند ورزش ترس از بیماری غالبا در تمرین ورزشی مناسب و صحیح دخالت می کند و چون باعث می شود فرد از زندگی خارج از خانه دوری کند منجر به اضافه وزن می شود آسیب پذیری ترس از بیماری مقاومت طبیعی بدن را نابود می کند و شرایط مساعدی را برای هر نوع بیماری ایجاد می کند ترس از بیماری غالبا ترس از بیماری به ترس از فقر مربوط می شود. در مورد فرد خود بیمار انگار که دائما نگران نداشتن حزینه های پزشک، بیمارستان و غیر است. چنین فردی بخش اعظم وقت خود را صرف آمادگی برای بیماری، صحبت کردن در مورد مرگ، پس کردن پول برای گورستان و حزینه های کفن و دفن و غیره می کند. خودنوازی عادت به درخواست همدردی با استفاده از بیماری خیالی به عنوان یک عامل فریبنده. مردم غالبا برای اجتناب از کار کردن به این حقه متوصل می شوند. عادت به تمارض برای سرپوش گذاشتن بر روی تنبلی و یا بهانه کردن برای عدم بلند پرووازی. عادت به مصرف الکل یا مواد مخدر یا انواع دارو برای برطرف کردن دردهایی مثل سردرد و یا دردهای پیش پا افتاده و غیره به جای علت بیماری عادت به مطالعه در مورد بیماری و نگران شدن در مورد احتمال ابتلا به آن و عادت به خواندن تبلیغات دارویی انحصاری ترس از دست دادن معشوق منبع اولیه این حراس احتمالاً از زمانی نشأت میگیرد که مردها زنهای یکدیگر را میرو بودند یا با زنهای دیگر رابطه برقرار می‌ساختند. حسادت در ساگر انواع ناراحتی‌های روانی ناشی از ترس از دست دادن عشق و محبت دیگران است. این ترس در میان ترس‌های ششگانه از همه دردناکتر است و بیشتر فکر و ذکر اشخاص را اشغال می‌کند. ترس از دست دادن اشق و محبت احتمالاً به اصر حجر باز می‌گردد که مردها به اتکای قوت بازو زنان را تصاحب می می‌کردند مردهای روزگار ما هم به این کار ادامه می‌دهند اما شیوه آنها با گذشته تفاوت کرده است مردهای زمانه ما به جای زور سعی می‌کنند با قول دادن به خرید لباس‌های زیبا، اتومبیل‌های شیک و آخرین مدل به این کار تن بدهند که در مقایسه با استفاده از نیروی جسمانی بسیار موثرتر است. عادات مردها در این زمینه شبیه عادات آنان در شروع تمدن است. با این تفاوت که حالا مردها روش خود را به شکل دیگری بروز می دهند. بررسی های دقیق به عمل آمده نشان می دهد که زنها بیش از مردها در معرض حراس هستند. توضیح ساده نیز دارد زنها به تجربه آموختند که مردها طبیعتا از ارتباط با زنهای مختلف استقبال می کنند. نشانه های ترس از دست دادن مهر و محبت نشانه های بارز این ترس عبارتند از حسادت داشتن سوء زن به دوستان و عزیزان بدون دلیل مستدل و منطقی تهمت زدن به همسر بدون هر گونه دلیل موجه سوء زن داشتن نسبت به همه و باور نداشتن اشخاص عیب جویی بیابی در دوستان، اقوام، بستگان، همکاران و عزیزان بدون دلیل مشخص. قمار کردن، قمار، دزدی، تقلب و تندادن به کارهای خطیر به منظور تأمین پول برای جلب محبت دیگران. خرج کردن بیش از اندازه یا زیر بار قرض رفتن به منظور راضی کردن معشوق. بیخوابی، عصبیت، فقدان مداومت و پایداری، ضعف اراده، خیشتندار نبودن، نداشتن اعتماد به نفس و بدخلقی. ترس از پیری. اساساً این ترس دو منشأ دارد. نخست این فکر که پیری با خود فقر میآورد. دوم، معمولترین منشه آن آموزه‌های غلط و بیرحمانه گذشته است که در آن افراد پیر جادوگر، اجوزه و مکار بودند. در ترس بنیادی از پیری، انسان دو دلیل برای نگرانیش دارد. یکی از بیعتمادیش به هم ریشه می‌گیرد. گیرد. هم که هرچه او مال و انوال جمع کرده، تصاحب خواهند کرد. دیگری از تصاویر وحشتناک دنیای پس از مرگ ریشه می‌گیرد که از طریق میراث اجتماعی در ذهن او کاشته شده است. احتمال بیماریی که با بالا رفتن سن بیشتر می شود نیز از علل کمک کننده ای این ترس شایع از پیری است. اروتیسم نیز از علل ترس از پیری است چون هیچکس از فکر کاهش جذابیت جنسی استقبال نمی کند. ترین علت ترس از پیری احتمالا به فقر مربوط می شود. خانه سالمندان مستمند کلمه خوبی نیست، ذهن هر کسی را با تصویر اینکه مجبور است سالهای پایانی خود را در یک دخمه فقیرانه سپری کند، ترسانده است. علت دیگر ترس از پیری احتمال از دست دادن آزادی و استقلال است چون پیری همراه با فقدان آزادی جسمی و اقتصادی است. نشانه های ترس از پیری شایی ترین نشانه های این ترس عبارتنده از گراگش به کندی و دوچار اقدهی حقارت شدن در سن بلوغ ذهنی، یعنی در حدود چهل سالگی که فرد به اشتباه باور دارد، در ورطه پیری افتاده است. حقیقت این است که مفیدترین سالهای انسان از لحاظ ذهنی و روحی بین چهل تا شست سالگی است. عادت به پیر نامیدن خود صرفا به این دلیل که فرد به سن چهل یا پنجاه سالگی رسیده است، به جای شوق گذاری به خاطر رسیدن به سن دانایی و فهم عادت کشتن قوه ابتکار، تخیل و خوداتکایی به وسیله این باور غلط که فرد برای تمرین کردن این خصوصیات خیلی پیر شده است عادت مرد یا زن ساله به لباس پوچیدن به منظور تلاش برای جوان به نظر رسیدن و عدا و عطفار جوانی را دراوردن و در نتیجه موجب ممسحه دوستان و غریبه ها شدن، ترس از مرگ این ترس برای برخی بیرحمان ترین ترس است. دلیل آن روشن است: ترس وحشتناکی که با فکر مرگ تجای می شود در اکثر موارد میتواند مستقیما به وسیله ترسگرای مذهبی تقویت شود. افراد به طلاح بیدین کمتر از افراد متدین از مرگ می ترسند. صدها میلیون سال است که انسان این سوال را از خود میپرسد که از کجا آمدم و به کجا می روم. در اثار تاریک گذشته آدم های و مکارتر به این سوالات سریع پاسخ میدادند حالا به منبع اصلی منشأ ترس از مرگ توجه کنید رهبر یک فرقه فریاد میزند به داخل چادر من بیا ایمان مرا قبول کن تعصبات مرا بپذیر تا به تو بلیتی بدهم که تو را در زمان مرگ مستقیما به داخل بهشت ببرد همان رهبر میگوید اگر از چادر من خارج شوی شیطان تو را در بر میگیرد و تو را تا ابد میسوزاند تا ابد زمان طولانی است و آتش چیز وحشتناکی است فکر مجازات ابدی با آتش نه تنها باعث می شود فرد از مرگ بترسد بلکه غالباً باعث می شود عقل خود را هم از دست بدهد. فکر مجازات علاقه به زندگی را نابود می کند و خوشحالی و شادکامی را غیرممکن می نماید. در طول تحقیقاتم کتابی به نام کاتالوگ خدایان را مرور می کردم. در آن سی هزار خدا نام برده شده بود که انسان تا به حال پرستیده است. فکرش را بکنید سی هزار خدا از خرچنگ دراز گرفته تا انسان و این نشان دهنده این است که انسان ها از مرگ می ترسند هرچند رهبر مذهبی قادر نیست راه ایمنی برای ورود به بهشت پیدا کند ولی ترس از جهنم چنان وحشتناک به نظر می رسد و ذهن را چنان واقع گرایانه درگیر می کند که عقل را فلج می کند و باعث ترس از مرگ می شود در حقیقت هیچ انسانی نمی داند و هیچ انسانی ندانسته است که بهشت یا جهنم چطوری است. فقدان علم اثباتی راه ذهن انسان را برای شگادان باز می کند تا وارد ذهن او شوند و این ذهن را با انبوهی از ترفندها و حقه ها و انواع کلاهبرداری ها و حیله های پرهیز معابانه انباشته کنند. ترس از مرگ امروز کمتر از زمانی است که کالجها و دانشگاه‌های بزرگ وجود نداشتند. دانشمندان نورفکن حقیقت را بر روی دنیا انداختند و این حقیقت مردان و زنان را به سرعت از ترس وحشتناک از مرگ نجات می‌دهد. ترس‌های آثار تاریک که ذهن انسان‌ها را قفل و عقلشان را نابود می‌نمود، به واسطه یک کمک زیستشناسی، نجوم، زمینشناسی و دیگر علوم مرتبط کمی برطرف شده است ها پر از مردان و زنانی است که به خاطر ترس از مرگ دیوانه شدند این ترس بیفایده است صرف نظر از اینکه ما چه فکری درباره مرگ می کنیم مرگ خواهد آمد آن را به عنوان یک ضرورت بپذیرید و فکر آن را از ذهنتان بیرون کنید باید یک ضرورت باشد وگرنه به سراغ همه نمی آمد کل دنیا فقط از دو چیز تشکیل شده است انرژی و ماده در فیزیک مقدماتی یاد می‌گیریم که نه ماده و نه انرژی تنها واقعیت‌هایی که برای انسان شناخته شدند، نمی نمی‌توانند تولید یا نابود شوند یعنی ماده و انرژی می‌توانند به هم تبدیل شوند ولی نمی‌توانند نابود شوند زندگی انرژی است و انرژی و ماده نمی‌توانند نابود شوند پس زندگی نمی‌تواند نابود شود زندگی مثل دیگر شکل انرژی میتواند از طریق روند متعدد انتقال یا تغییر عبور داده شود ولی نمیتواند نابود شود. مرگ صرفاً یک انتقال است. اگر مرگ صرفاً تغییر یا انتقال است پس بعد از مرگ چیزی نخواهد بود جز یک خواب طولانی، ابدی و آرام و خواب چیزی نیست که فرد از آن بترسد. در نتیجه، میتوانید ترس از مرگ را برای همیشه از بین ببرید. علائم ترس از مرگ علائم عمومی این ترس عبارتند از عادت به فکر کردن در مورد مرگ به جای بردن بیشترین استفاده از زندگی. علت آن بی هدفی یا نداشتن یک مشغله مناسب است این ترس در میان افراد مسن شعوع بیشتری دارد ولی گاهی جوانترها هم قربانی آن می شوند بزرگترین علاج ترس از مرگ ایجاد میل شدید به پیشرفت است که به وسیله خدمت مفید به دیگران حمایت می شود کسی که سرش شلوغ باشد وقتی برای فکر کردن به مرگ پیدا نمی کند او زندگی را آنقدر هیجان انگیز می که نگران مرگ نمی شود گاهی ترس از مرگ رابطه نزدیکی با ترس از فقر دارد که در آن مرگ فرد باعث می شود عزیزانش فقر زده شوند در موارد دیگر علت ترس از مرگ بیماری و فروپاشی غریب الوقوع مقاومت جسمی است ترین علت ترس از مرگ اینها هستند بیماری فقر، عدم مشغله مناسب، ناامیدی در عشق یا همون شکست عشقی، دیوانگی و تعصب مذهبی. نگرانی نگرانی یک حالت ذهنی است که بر اساس ترس پدید می آید. آهسته و پیوسته عمل می کند. گام به گام مثل خوره جلو می آید تا اینکه که قوه استدلال فرد را فلج می کند. و اعتماد به نفس و قوه ابتکار را نابود می کند نگرانی شکلی از ترس پایدار است که علت آن تردید است بنابراین یک حالت ذهنی است که می توان آن را کنترل کرد ذهن ناآرام مستعصل است تردید باعث ناآرامی می شود اکثر افراد فاقد قدرت اراده برای تصمیم گیری سریع و پایان ماندن پس از تصمیم گیری حتی در شرایط کاری طبیعی هستند. در طول دوره های رکود اقتصادی، فرد نه تنها به واسطه ی اقتضای شرایط کنتر تصمیم می‌گیرد، بلکه تحت تأثیر تردید اطرافیانش که حالت تردید دست جمعی را ایجاد کردن، قرار خواهد گرفت و آسیب بیشتری می بیند. در طول دوره رکود اقتصادی، کل جو در سراسر دنیا مملو از بیماری ترس و بیماری نگرانی شده بود. تو میکروب بیماری ذهنی که پس از آشفت بازار والستریت در سال 1929 شایو پیدا کرد. این میکروب ها فقط یک پادزهر شناخته شده دارند. عادت به تصمیم گیری سری و قاطع علاوه بر این، این پادزهری است که هر فرد باید آن را برای خودش به کار گیرد. همین که ما تصمیم بگیریم، یک سری اقدامات مشخص اتخاص کنیم، دیگر نگران اوضاع نخواهیم بود. یک بار با مردی مصاحبه کردم که قرار بود دو ساعت بعد با شوک الکتریکی اعدام شود. این مرد محکوم از همه هشت نفری که در سلول با او بودند آرامتر بود. آرامش او مرا وادار ساخت تا از او بپرسم اینکه میداند پس از مدت کوتاهی به ابدیت خواهد پیوست چه احساسی دارد. او با لبخندی حاکی از اعتماد به نفس که بر لب داشت گفت: برادر، احساس خوبی دارم. فکرش را بکن رنج هایم به زودی به پایان خواهد رسید من در زندگی چیزی نداشتم جز زحمت و رنج به دست آوردن غذا و لباس برایم مشقتی بوده است به زودی به این چیزها نیاز نخواهم داشت از زمانی که مطمئن شدم اعدام می شدم، احساس خوبی پیدا کردم تصمیم گرفتم تقدیرم را با روح نیک بپذیرم وقتی داشت صحبت می کرد را که برای سه نفر کافی بود بل اید. هر للقمه غذایی که به او امیددادند را میخورد و ظاهرا از آن لذت میبرد گویی هیچ مصیبتی در انتظار او نیست. تصمیم به این مرگ تسلیم در مقابل تقدیرش را سبب شد. بنابراین تصمیم میتواند مانع از آن شود که فرد شرایط نامطلوب را بپذیرد. شش ترس اساسی از طریق تردید به حالت نگرانی تبیر می شوند. تصمیم بگیرید که مرگ را به عنوان یک رویداد اجتناب ناپذیر بپذیرید و با این کار خودتان را از ترس از مرگ برای همیشه رها کنید. تصمیم بگیرید که بدون نگرانی هرچه می میتوانید جمع کنید. به پیش بروید و به این ترتیب ترس از فقر را کنار بگذارید. تصمیم بگیرید که نگران حرف ها کارها و افکار مردم نباشید و به این صورت پایتان را روی گردن ترس از انتقاد بگذارید تصمیم بگیرید که پیری را نه به عنوان زف بلکه به عنوان یک موهبت بزرگ که دانایی خیشتنداری و درک آنچه برای جوانان مجهول است برای خود بپذیرید و به این ترتیب ترس از پیری را برطرف کنید تصمیم بگیرید علائم را فراموش کنید و بدین ترتیب خودتان را از بند ترس از بیماری رها کنید. تصمیم بگیرید اگر لازم است بدون عشق پیش بروید و بدین ترتیب بر ترس از دست دادن عشق فائق آیید. تصمیم کلی بگیرید که زندگی هیچ چیزی ندارد که ارزش نگران شدن داشته باشد. و به ترتیب عادت نگران شدن را در تمام شکلهایش از بین ببرید. این تصمیم همراه خواهد بود با سکون، آرامش ذهن و آرامش فکری که باعث شادکامی خواهد شد. کسی که ذهنش پر از ترس باشد، نه تنها شانس خودش را در انجام کارهای هوشمندانه از بین میبرد، بلکه این امواج مخرب را به ذهن همه کسانی که با او تماس دارند منتقل می کند، و شانس آنها را نیز نابود می‌سازد اندیشه مخرب حتی یک سگ یا اسب وقتی صاحبش فاقد جرأت است اینجا می‌داند علاوه بر این یک سگ یا اسب امواج ترس را که صاحبش می‌فرستد دریافت می‌کند و بر اساس آن رفتار می‌کند در قلمرو حیوانات در آنهایی که هوش پایینتری دارند همین ظرفیت در دریافت امواج ترس را میتوان یافت زنبور اصل فوراً ترس را در ذهن یک فرد احساس میکند بنا به دلایلی که معلوم نیست زنبور آمادگی خیلی بیشتری دارد که کسی را نیش بزند که ذهنش امواج ترس را ساته می میکند و آمادگی خیلی کمتر برای اذیت کردن کسی که ذهنش ترس را ثبت نکرده است دارد با همان سرعت و قطعیتی که صدای انسان از یک ایستگاه پخش به گیرندهای رادیو میرسد و با همان وسیله امواج ترس از ذهنی به ذهن دیگر منتقل میشوند. تلپاتی ذهنی یک واقعیت است. افکار به صورت اختیاری از ذهنی به ذهن دیگر منتقل میشوند. حالا چه کسی که افکار را میفرستد چه کسی که آن را دریافت میکند از این واقعیت خبر داشته باشد یا نداشته باشد. کسی که با کلام به افکار منفی یا مخرب پاسخ می دهد، عملاً مطمئن است که نتایج آن کلمات را به شکل یک واکنش مخرب تجربه می کند. انتشار انگیزه های فکری مخرب به تنهایی و بدون کمک کلمات به چندین روش باعث تولید واکنش می شود. قبل از هر چیز، و شاید مهمترین نکته که باید به یادآورد این است که کسی که افکاری با ماهیت منفی سات می کند، از طریق فروپاشی قدرت تخیل خلاق آسیب می بیند. دوم اینکه حضور هیجان مخرب در ذهن باعث شخصیت منفی می شود که افراد را دفع می کند و آنها را غالبا به مخالفان تبدیل می کند. منبع سوم آسیب به انسانی که افکار منفی می‌پروراند یا ساطع می‌کند در این واقعیت مهم است این انگیزه های فکری نه تنها به دیگران آسیب می‌رساند بلکه در ذهن نیمه خداگاه فردی که آنها را ساته می می‌کند ریشه می‌کند و بخشی از شخصیتش می‌شود کار فرد صرفاً با ساطع کردن یک فکر تمام نمی‌شود وقتی فکری ساته می شود از طریق هوا در هر جهت پخش می شود ولی خود را دائما در ذهن نیمه آگاه فردی که آن را ساته می کند می کارد کار شما در زندگی احتمالا دستیابی به موفقیت است برای اینکه موفق شوید باید آرامش ذهن پیدا کنید نیازهای مادی زندگی را برآورده کنید و مهمتر از همه به شادکامی برسید همین شواهد می توانند به شکل تکانه های فکری شروع شوند. می توانید ذهن خودتان را کنترل کنید و این قدرت را دارید که تکانه های فکری را که انتخاب می کنید تغضیه کنید. این امتیاز با مسئولیت استفاده سازنده از آن همراه است. با همان قطیتی که شما قدرت دارید افکار خودتان را کنترل کنید مسلط به سرنوشت دنیایتان هستید. می توانید در استفاده از این امتیاز یعنی قدرت تسلط بر سرنوشت قفلت کنید یا نهایت بهره را با هدایت، کنترل و تاثیرگذاری بر زندگی و محیطتان ببرید و زندگیتان را سر و سامان بدهید. می توانید همانند تک چوبی خودتان را به دست شرایط بسپارید و به این سو آنسو بروید یا اینکه سکان کشتی زندگی را روی اقیانوس دست بگیرید کارگاه شیطان هفتمین شر اساسی پس از شش ترس اصلی علاوه بر شش ترس اصلی یک شر دیگر هم وجود دارد که مردم از آن رنج می برند. این شر خاک غنی را تشکیل می دهد که دانه های شکست به فراوانی از آن می رویند آنچنان ظریف است که حضور آن غالبا شناسایی نمی شود این بلا نمی‌تواند دقیق به عنوان یک ترس طبقه بندی شود. غالبا ریشهدارتر و مهلکتر از همه ی شش ترس است. بنا به ضرورت یک نام بهتر بیایید این بلا را آسیب پذیری در مقابل تأثیرات منفی بنامیم. کسانی که ثروت فراوان جمع می‌کنند همیشه در مقابل این بلا از خودشان محافظت می‌کنند. فقرا هرگز چنین نمی‌کنند. آنهایی که در هر کاری موفق می شوند، باید ذهنشان را آماده کنند که با این مصیبت مقابله کنند اگر شما این فلسفه را برای انباشتن ثروت می‌خوانید باید خودتان را دقیقاً بررسی کنید تا ببینید آیا در مقابل تأثیرات منفی آسیبپذیرید یا خیر اگر از این خودکاوی غفلت کنید از حقتان در دستیابی به هدف و خواسته هایتان عقب کشیده اید. پس از, از اینکه سوالات این خودکاوی را خاندید، خودتان را در پاسخ دادن به این سوالات به شدت مسئول بدانید و با چنان دقتی به این کار بپردازید که گویی دنبال دشمنی هستید که میدانید برای شما کمین کرده و چنان با عیبهای خودتان مواجه شوید که گویی با عیبهای یک دشمن واقعی مواجه شده اید شما میتوانید خودتان را به راحتی در مقابل راهزنان محافظت کنید چون قانون همکاری سازمان یافته به نفع شما فراهم می آورد. ولی تسلط بر بلای اساسی هفتم سختتر است چون زمانی ضربه می زند که شما از حضور آن آگاه نیستید علاوه بر این سلاح آن ملموس است چون صرفا از یک حالت ذهنی تشکیل می شود این بلا بسیار خطرناک است چون به تعداد بشر دارای شکل‌های بروز متفاوتی است مثل زهر کشنده است حتی اگر به سرعت نکشد چطور خودتان را از تاثیرات منفی محافظت کنید برای اینکه خودتان را از تأثیرات منفی محافظت کنید چه این تأثیر تأثیر ساخت خودتان باشد چه نتیجه فعالیت‌های افراد منفی اطرافتان باید از قدرت کنترل استفاده کنید تا دیوار ایمن در مقابل تأثیرات منفی در ذهن خودتان ایجاد کنید حواستان به این واقعیت باشد که شما و هر انسان دیگری ذاتن بی تفاوت و در مقابل همه تلقیناتی که با ضعفتان هماهنگ است آسیب پذیر هستید حواستان باشد که شما ذاتن در مقابل همه ترس های ششگانه آسیب پذیرید بنابراین آداتی به منظور مقابله متقابل با همه این ترس ها در خود ایجاد کنید. حواستان باشد که تأثیرات منفی غالبا از طریق ذهن نیمه آگاه بر روی شما اثر می کند. بنابراین شناسایی آنها مشکل است. ذهنتان را در مقابل همه افرادی که شما را به شکل افسرده و یا معیوس می کنند بسته نگه دارید. قفصه داروها را خالی کنید. بطری های قرص ها را دور بیاندازید و از دامن زدن به سرماخوردگی درد و بیماری های خیالی دست بردارید. تعمدن دنبال معاشرت با کسانی باشید که بر شما تاثیر میگذارند تا فکر کنید و خودتان عمل کنید. انتظار نداشته باشید سختی ناامیدتان نکنند. بیشک شیه ترین نقط ضعف همه انسان ها عادت به بازگذاشتن ذهن در مقابل تأثیرات منفی دیگر افراد است. این نقطه ضعف مضر است، چون اکثر افراد متوجه نمی شوند که به وسیله آن دردام افتادند و خیلیها که متوجه آن می شوند از اینکه این بلا را اصلاح کنند قفلت می کنند تا اینکه بخش غیرقابل کنترلی از عادات روزمرهشان می شوند. برای کمک به کسانی که میخواهند خودشان را آنگونه ببینند که واقعا هستند، فهرست سوالات زیر آماده شده است. این سوالات را بخوانید و پاسخهایتان را با صدای بلند بیان کنید طوری که بتوانید صدای خودتان را بشنوید. این کار باعث خواهد شد با خودتان صادق تر باشید. سوالات خودکاوی آیا غالبا از داشتن احساس بد شکایت می کنید و اگر اینطور است، علت چیست؟ آیا با کوچکترین محرکی از دیگران ابجویی می کنید؟ آیا غالباً در کارتان اشتباه می کنید و اگر چنین است علت چیست؟ آیا در گفتگوهایتان های تانطعنه تنظامیز می زنید یا پرخاش می کنید؟ آیا عمدن از معاشرت با دیگران دوری می کنید؟ در این صورت علت چیست ؟ آیا مکررن رنجیده خاطر میشوید؟ در این صورت؟ علت چیست؟ آیا برای شما زندگی بیهوده و آینده ناامیدانه به نظر می رسد؟ اگر هست، علت چیست؟ آیا شغلتان را دوست دارید؟ اگر دوست ندارید، علت چیست؟ آیا غالباً احساس ترحم به خود می کنید؟ اگر چنین است، علت چیست؟ آیا به دیگرانی که از شما بهترند حسادت می کنید؟ بیشتر وقتتان را صرف چه می کنید؟ صرف فکر کردن به موفقیت یا صرف فکر کردن به شکست؟ آیا همچنان که سنتان بالا می رود اعتماد به نفستان بیشتر می شود یا کمتر؟ آیا چیز با ارزشی از همه اشتباهاتتان یاد می گیرید یا خیر؟ آیا اجازه می دهید یکی از بستگان یا آشنایان شما را نگران کند؟ در این صورت علت چیست؟ آیا گاهی از شدت خوشحالی در پوست خود نمیگنجید و گاهی در ورته نامیدی میفتید؟ چه کسی الهام بخش ترین تاثیر را رو روی شما دارد؟ علت چیست؟ آیا تأثیرات منفی یا معیوز کننده قابل اجتناب را تحمل می کنید؟ آیا به ظاهرتان بیتوجه هستید اگر چنین است چه زمانی و چرا آیا یاد گرفته اید چطور انقدر مشغول باشید که حواستان به سختی هایتان نباشد و بدین ترتیب سختی هایتان را از سر بگذرانید؟ آیا به دیگران اجازه می دهید که به جای شما فکر کنند؟ چه تعداد ناراحتی قابل پیشگیری شما را آزار می دهد و چرا آنها را تحمل می کنید؟ آیا به الکل، مواد مخدر یا سیگار متوسل می شوید تا اصابتان را آرام کنی؟ اگر چنین است، چرا در عوض سعی نمی کنید، اراده را امتحان کنید. آیا کسی به شما غور میزند؟ و اگر چنین است، علت چیست؟ آیا یک هدف اصلی معین دارید؟ و اگر چنین است، آن چیست و چه برنامه‌ای برای رسیدن به آن دارید؟ آیا دچار ترس های اصلی ششگانه هستید؟ اگر چنین است، دچار کدام ترس هستید؟ آیا روشی دارید که با آن بتوانید خودتان را در مقابل تأثیر منفی دیگران محافظت کنید؟ آیا از خود تلقینی عملاً برای مثبت کردن ذهنتان استفاده می کنید؟ چه چیزی برایتان بیشترین ارزش را دارد؟ انوالتان یا قدرتی که در کنترل افکار خودتان دارید؟ آیا برخلاف رأی خودتان به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرید؟ آیا امروز چیز با ارزشی به انبار دانش معلوماتتان اضافه شده است؟ آیا مستقیما با شرایطی که شما را ناراحت می‌کند روبرو می‌شوید یا از مسئولیت شانه خالی می‌کنید؟ آیا همه اشتباهات و شکست‌ها را تحلیل می‌کنید و سعی می‌کنید از آنها بهره ببرید یا این نگرش را در پیش می‌گیرید که این وظیفه شما نیست؟ آیا می توانید سه مورد از مزر ترین نقطه ضعف هایتان را نام ببرید؟ برای تصحیح آن چه کار خواهید کرد؟ آیا دیگران را تشویق می کنید تا هایشان را به شما نشان دهند؟ آیا از تجارب روزمرهتان، درس ها یا تاثیراتی را انتخاب می کنید که به پیشرفت شخصیتان کمک کند؟ آیا حضور شما تاثیر منفی روی دیگران میگذارد؟ کدام عادت دیگران شما را بیشتر آزار می دهد؟ آیا خودتان نظر می دهید یا به خودتان اجازه می دهید تحت تأثیر دیگران قرار گیرید؟ آیا یاد گرفتهید که چگونه یک حالت ذهنی ایجاد کنید تا با آن بتوانید در مقابل همه تأثیرات معیوز کننده از خودتان محافظت کنید؟ آیا شغلتان به شما ایمان و امید و الهام می بخشد؟ آیا شما از نیروهای معنوی کافی برای قوی نگه داشتن خود در آزاد نگه داشتن ذهنتان از قید همه شکل‌های ترس باخبر هستید؟ آیا دینتان به شما کمک می‌کند که ذهن خودتان را مثبت دارید؟ آیا احساس وظیفه در برابر های دیگران دارید؟ اگر چنین است علت چیست؟ اگر به کبوتر با کبوتر باز با باز دارید با بررسی احوال دوستانتان درباره خودتان چه فکر میکنید؟ بین افرادی که بیشتر با آنها معاشرت میکنید و بدبختی که دارید چه رابطه ای میبینید؟ آیا ممکن است که کسی که شما او را یک دوست واقعی تلقی میکنید در واقع بدترین دشمنتان باشد و علت آن تأثیر منفی وی بر روی ذهنتان باشد؟ بر اساس چه قوانینی قضاوت می کنید که چه کسی برای شما مفید و چه کسی موزر است؟ آیا معاشران نزدیکتان به لحاظ ذهنی از شما بالاترند یا پایین چه مقدار زمان از 24 ساعت هر روز را به موارد زیر اختصاص می الف، شغل به خواب جیم تفریح و استراحت دال کسب دانش مفید و ه تلف کردن در میان آشنایانتان چه کسی الف شما را بیشتر تشویق می کند ب بیشتر به شما هشدار می‌دهد، جیم بیشتر شما را معیوس می کند دال به شیوه های دیگر بیشتر به شما کمک می کند؟ بزرگترین نگرانیتان چیست؟ چرا آن را تحمل می کنید؟ وقتی دیگران پند مجانی و ناخواسته به شما می‌دهند، آیا آن را بدون پرسش قبول می‌کنید یا انگیزه ی آنها را تحلیل می‌نمایید؟ چیزی که شما بیش از هر چیز دیگری طالبان هستید را در نظر بگیرید. آیا قصد دارید آن را کسب کنید؟ آیا مایلید همه خواسته‌های دیگرتان را نسبت به این موضوع در وهله بعدی قرار دهید؟ روزانه چقدر وقت برای تسلط بر آن می دهید؟ آیا ذهنتان را غالباً تغییر می دهید؟ اگر چنین است، علت چیست؟ آیا معمولا هر کاری که شروع می کنید را تمام می آیا به راحتی تحت تأثیر مدارک دانشگاهی، ثروت یا کسب و کار و یا عناوین حرفه دیگران قرار می آیا به راحتی تحت تأثیر گفته یا افکار دیگران در مورد خودتان قرار می گیرید؟ آیا به خاطر موقعیت اجتماعی یا مالی افراد به آنها توجه می کنید؟ فکر می کنید چه کسی بزرگترین فردی است که در حال حاضر زنده است؟ این فرد از چه لحاظ بر خودتان برتری دارد؟ چه مقدار وقت صرف مطالعه و پاسخ به این سوالات کردید؟ حداقل یک روز برای تحلیل و پاسخ دادن به کل این فهرست لازم است؟ اگر صادقانه به همه این سوالات جواب داده باشید، بیشتر از آنچه دیگران درباره شما می‌دانند، راجع به خودتان خواهید دانست. سوالات را به دقت بررسی کنید. در طول چند ماه، هر هفته چند بار به سراغ آنها بروید تا از مقدار دانش اضافی بسیار ارزشمندی که برایتان حاصل می‌شود، تعجب کنید. دانشی که از روش ساده پاسخ دادن صادقانه به سوالات کسب خواهید کرد. اگر از پاسخ دادن به بعضی از این سوالات مطمئن نیستید، نظر مشورتی کسانی را که خوب می‌شناسید، بپرسید. مخصوصاً کسانی که قصدشان چاپلوسی نیست و خودتان را در چشم آنها ببینید. این تجربه شگفتانگیز است. شما روی یک چیز کنترل مطلق دارید و آن افکارتان است. این مهمترین و الهامبخشترین است که انسان شناخته است. این انعکاس دهنده ماهیت الهی انسان است. این حق انحصاری الهی تنها وسیله ای است که شما با آن سرنوشت خودتان را کنترل می کنید. اگر از کنترل کردن ذهن خودتان باز بمانید، مطمئنا چیز دیگری را کنترل نخواهید کرد. اگر باید به چیزی بی توجه باشید بگذارید این بیتوجهی در مورد مادیات باشد. ذهن شما ملک معنویتان است. با طقت فراوان از آن محافظت کنید و از آن استفاده کنید. به شما برای این هدف قدرت اراده عطا شده است. متاسفانه هیچگونه حفاظت حقوقی علیه کسانی که با نقشه یا از روی قفلت ذهن دیگران را با تلغین منفی مسموم می کنند، وجود ندارد. این شکل نابودی باید به وسیله مجازات‌های شدید قانونی قابل مجازات باشد چون غالبا امکان کسب ثروت مشروع را نابود می‌کند کسانی که ذهن منفی داشتند سعی کردند توماس آلوا ادیسون را متقاعد کنند که او نمی‌تواند دستگاهی بسازد که صدای انسان را ضبط و باز تولید کند چون می‌گفتند هیچ کس تا به چنین دستگاهی تولید نکرده است ادیسون به حرف آنها باور نداشت او می دانست که ذهن می تواند هر چیزی را که بتواند تصور و باور کند بسازد و این دانش چیزی بود که ادیسون بزرگ را از میان عامه مردم بالا برد. افرادی که ذهن منفی داشتند به FW Woolworth صاحب بزرگترین خورده فروشی زنجیرهی گفتند او که سعی دارد با فروش 5 دلار و ده سنتی مغازهی را اداره کند ورشکسته خواهد شد او حرف آنها را باور نکرد. او میدانست که اگر با ایمان از برنامههایش پشتیبانی کند هر کاری که در چارچوب عقل باشد را میتواند انجام دهد. او با به کارگیری حق خود در بیرون نگه داشتن تلقین های منفی دیگران از ذهن خود پول هنگفتی بیش از 100 میلیون دلار اندوخت. افرادی که ذهن منفی داشتند به جورج واشنگتن گفتند او نمی تواند امیدوار باشد که در برابر نیروهای بسیار قدرتمند بریتانیا پیروز شود ولی او حق الهی خود را به کار گرفت تا باور کند. بنابراین این کتاب تحت حمایت پرچم آمریکا چاپ شد در حالی که نام لورد کورنوالیس کاملا فراموش شده بود. وقتی هنری فورد اولین اتومبیل خام دست ساز خود را در خیابان‌های دیترویت امتحان کرد، شکاکان او را مسخره می‌کردند. بعضیها ها می‌گفتند آن ماشین هیچ وقت عملی نخواهد شد. دیگران می‌گفتند هیچکس در ازای چنین دستگاه پیچیده و عجیب و غریبی پول نخواهد پرداخت. هنری فورد گفت: زمین را با اتومبیل‌های مطمئن دور خواهم زد. و این کار را کرد. تصمیم او مبنی بر اعتماد به نفسش بود به نظر خودش ثروت هنگفت و بسیار عظیمی که هفت نسل بعد از او بتوانند حیف و میل کنند را فراهم آورده بود و این نکته قابل توجه کسانی است که دنبال ثروت عظیم هستند عملا تنها تفاوت بین هنری فورد و صد هزار نفری که برای او کار میکردند این بود که فورد ذهنی داشت که آن را کنترل کرد. دیگران ذهنی داشتند که سعی نمی‌کردند آن را کنترل کنند نام هنری فورد مکرراً ذکر می‌شود چون او نمونه‌ای شگفت‌انگیزی بود از انسانی که ذهنی دارد که ارادان را کنترل می‌کند و به موفقیت می‌رسد رکوردی که او به جای گذاشت بهانه من اصلاً شانسی نداشتم را پی اساس می‌کند فورد هرگز شانس نداشته است ولی او فرصتی را ایجاد کرد و از آن با پشتکار همایت نمود تا اینکه ثروتش را از ثروت پادشاهان هم بیشتر کرد. کنترل ذهنی نتیجه انضباط فردی و عادت است یا شما ذهنتان را کنترل می کنید یا او شما را کنترل می کند. حالت بینابینی وجود ندارد. عملیترین روش برای کنترل ذهن عادت به مشغول نگه داشتن آن با یک هدف مشخص است، که با یک برنامه مشخص تغذیه می‌شود اگر سوابق فردی را بررسی کنید که به موفقیت ارزشمند رسیده است مشاهده خواهید کرد که او روی ذهن خودش کنترل داشته است ضمناً مدام آن کنترل را اعمال و آن را در جهت دستیابی به اهداف معینی هدایت می‌کند بدون این کنترل موفقیت غیر ممکن است بهانه‌های مشهور 57 افرادی که موفق نمیشوند، یک خصوصیت متمایز مشترک دارند. آنها همه علل شکستشان را میدانند و بهانه دارند که به باور آنها عامل شکستشان بوده. بعضی از این بهانهها ها زیرکانند و برخی نیز به وسیله واقعیات قابل توجیه هستند. اما بهانهها را نمی برای پول به کار برد. دنیا میخواهد فقط یک چیز را بداند. اینکه آیا شما به موفقیت رسیده‌اید یک تحلیلگر شخصیت فهرستی از پرکاربردترین ها را تدوین کرد همچنان که این فهرست را می‌خوانید خودتان را دقیق بررسی کنید و مشخص کنید چه تعداد از این بحانه ها مال خودتان هستند همچنین به یاد داشته باشید فلسفه‌ای که در این کتاب ارائه شده است هر یک از این بحانه ها را کهنه و منسوخ می‌سازد اگر من زن و خانواده نداشتم اگر پارتی داشتم اگر من پول داشتم اگر من تحصیلات خوب داشتم اگر من یک شغل داشتم اگر من سالم بودم اگر من وقت داشتم اگر اوضا بهتر بود اگر دیگران مرا درک می کردند، اگر شرایط من متفاوت بود اگر می توانستم دوباره زندگی کنم اگر از آنچه آنها می گویند نمی ترسیدم. اگر فرصتی به من داده میشد، اگر حالا فرصت داشته باشم اگر دیگران از من متنفر باشند، اگر اتفاقی برای متوقف کردن من روی ندهد اگر جوانتر بودم، اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام دهم ده اگر ثروتمند زاده شده بودم، اگر می توانستم با آدم حسابی ها ملاقات کنم، اگر استعدادی که بعضی ها دارند را می داشتم اگر جرأت قاطعیت و ابراز وجود می داشتم اگر از فرصت های گذشته استفاده می کردم اگر دیگران روی احسابم راه نمی اگر مجبور نبودم خانداری کنم و مراقب بچه ها باشم اگر می توانستم پول پس انداز کنم اگر رئیس قدر مرا می دانست، اگر کسی را داشتم که به من کمک می اگر خانواده مرا درک می کردند، اگر در یه شهر بزرگ زندگی می کردم اگر می توانستم دوباره شروع کنم اگر شخصیت بعضی از افراد را داشتم اگر انقدر چاق نبودم اگر استعداد معلوم می شدند، اگر می توانستم استراحتی بکنم اگر می توانستم هایم را بپردازم اگر شکست نخورده بودم اگر می دانستم چطور، اگر همه با من مخالف نبودند، اگر اینقدر نگرانی نداشتم، اگر می توانستم با فردی مناسب ازدواج کنم، اگر اینقدر احمق نبودم، اگر خانوادم اینقدر ولخرج نبودند، اگر از خودم مطمئن بودم، اگر بخت با من یار بود، اگر با طاله نحس به دنیا نیمده بودم، اگر تقدیر در کار نبود، اگر مجبور نبودم اینقدر سخت کار کنم اگر پولم را از دست نداده بودم یا گم نکرده بودم اگر در محله دیگر زندگی میکردم اگر گذشته بدی نمیداشتم اگر کسب و کاری از خودم داشتم اگر دیگران به من گوش میکردند اگر جرأت داشتم خودم را آنگونه که واقعا هستم ببینم میفهمیدم چه مشکلی دارم و آن را تصحیح می کردم. در آن صورت، این شانس را داشتم که از اشتباهاتم سود ببرم و چیزی از تجربه دیگران بیاموزم، چون میدانستم که مشکلی دارم. و اگر وقت بیشتری را به تحلیل نقاط ضعفم و وقت کمتری را صرف بهانه آوردن برای سرپوش گذاشتن روی آنها میکردم، حال و وضعم بهتر می بود. بهانه آوردن برای توجیه شکست، یک بهانه ملی یا حتی جهانی است این عادت به اندازه نژاد بشر قدمت دارد و برای موفقیت مهلک است چرا افراد به بهانه‌های های درد نخور می‌چسبند پاسخ روشن است آنها از بهانه‌ها دفاع می‌کنند چون خودشان آنها را تولید می‌کنند بهانه هر فرد زاده تخیل خودش است طبیعت انسان این گونه است که از زاده ذهن خودش دفاع کند. بهانه آوردن یک عادت عمیقاً ریشه است. شکست عادات سخت است، مخصوصا وقتی توجیهی برای انجام کاری باشند. افلاطون وقتی گفت: "اولین و بهترین پیروزی، پیروزی بر خویشتن است. مغلوب خیشتن شدن شرمآورترین و بدترین چیز است." این حقیقت را در ذهن داشت. فیلسوفی دیگر همین فکر را در ذهن داشت زمانی که گفت بسیار تعجب کردم وقتی کشف کردم که بیشترین زشتی که در دیگران میبینم انعکاسی است از طبیعت خودم آلبرت هوبارت می گوید: همیشه برایم یک راز بوده است که چرا افراد اینقدر وقت خود را امدن صرف گول زدن خود می کنند یا بهانه آوردن برای سرپوش گذاشتن روی نقاط ضعفشان اگر همین زمان به شکل متفاوت مورد استفاده قرار گیرد برای علاج نقطه ضعف کافی خواهد بود و دیگر به بهانه نیازی نخواهد بود زندگی یک صفحه شطرنج است و حریف شما زمان است اگر قبل از حرکت تردید کنید یا از حرکت صحیح قفلت کنید مهره هایتان به وسیله زمان از روی تخته حذف خواهند شد شما با حریفی بازی می کنید که تردید را تحمل نخواهد کرد تا الان شاید قبلا بهانه‌ای منطقی داشتید برای اینکه زندگی را وادار نکردید که آنچه درخواست کرده اید را به شما بدهد اما این بهانه حالا منسوخ شده است چون شما مالک شاه کلیدی هستید که قفل ثروت را می گشاید شاه کلید ناملموس است اما قدرتمند این شاه کلید امتیاز خلق در ذهن خودتان است ایجاد میل شدیدی برای شکل مشخصی از ثروت. استفاده از این کلید مجازاتی ندارد اما اگر از آن استفاده نکنید باید تاوان آن را بپردازید این تاوان پذیرش شکست است اگر از این شاه کلید استفاده کنید پاداش عظیمی دریافت خواهید کرد رضایتمندی از آن کسانی است که برخیشتن پیروز می شوند و زندگی را وادار می کنند هر آنچه از آن خواسته شده است را بپردازد. ارزش دارد که برای این پاداش تلاش کنید. در پایان مطالعه این کتاب امیدوارم به هدفی که در صددان هستید برسید. آیا متقاید شدید که شروع کنید؟